اول برپایی تفتیش در پایان قرن دوازدهم کلیسای کاتولیک با مرکز آن در روم مهمترین نهاد سیاسی و دینی در اروپا بود به سخن تاریخدان کارل استفنسون دستگاه پاپی در آستانه برپایی نظام دین سالار رومی از طریق درامیزی رهبری روحانی با ریاست دنیوی جهان مسیحی بود پاپ با حمایت کاردینالها اسقفها و نمایندگان دیپلماتیکی سفیران پاپ به شمار میرفتند در امور دینی اروپا نقش بسیار مهمی ایفا می کرد. پاپ از طریق شوراها یعنی نشست رهبران کلیسا عمل میکرد و در مورد شعائر دینی حکومت روحانیون امور مالی کلیسا و امور مربوط به سنت دینی سیاست گذاری میکرد پاپ نه تنها بر قلم رو به پاپی فرمان میراند، بلکه با بیپروایی در امور سیاسی اروپا مداخله می‌کرد. پادشاهان را در سرزمینی که اکنون آلمان است، ازل می‌نمود و در مناقشات پیاپی بین پادشاهان فرانسه و انگلستان از اختدار خود در جهت تسلط بر یک طرف و سپس طرف دیگر استفاده می‌کرد. فرمانروایان لهستان، مجارستان، آراگون و دانمارک خود را واسالها یا خدمتگزاران پاپ می‌دانستند. قدرت پاپ تا کلیساهای محلی امتداد می‌یافت و این کلیساها در زندگی تقریبا همه کس در اروپا نقش بارزی داشتند. به جز جمعیت غلیل یهودیان و اعراب مغربی در اسپانیا، همه مردم در جامعه کاتولیک پا به دنیا می‌گذاشتند. و این جامعه در قرن دوازدهم هیچ رقیبی نداشت. قدرت پاپی در معرض تهدید. اما حتی هنگامی که پاپ و دیگر رهبران کلیسا از این موزه محوری و بسیار قدرتمند برخوردار بودند، میدانستند که قدرتشان ممکن است به آسانی به چالش کشیده شود. در همین زمان نیز کلیسا مورد انتقاد قرار داشت و در برخی نواحی مردم داشتند به عقاید مذهبی دیگر و تازه‌تر روی می‌آوردند کلیسای کاتولیک این عقاید را بدعت‌گزارانه تلقی می‌کرد دیدگاه‌های بدعت‌گزارانه یعنی عقاید مذهبی که با موازه اعتقادی کلیسا تفاوت چشمگیری داشتند اشکال بسیاری به خود می‌گرفتند بدعتگزاران ممکن بود در ماهیت تسلیس، الهیت عیسی یا انسان بودن او اعتبار باروری مقدس و باکر شک کنند یا این پرسش را مطرح کنند که آیا کشیش مغزوب کلیسا باز هم می تواند به انجام وظایف دینی بپردازد؟ آنها ممکن بود حتی اختیار پاپ را در سخن به نمایندگی از تمام کلیسا به چالش بکشند؟ دستگاه پاپی به ویژه از هر دیدگاه مذهبی که اقتدارش را نادیده می‌گرفت وحشت داشت اگر چنین دیدگاه‌های مقبولیت عمومی پیدا می‌کردند کلیسا قدرت برانگیختن مردم را از دست می‌داد پاپ از آن نیز می‌ترسید که پادشاهان با هواداران این دیدگاه‌ها همراه شوند و بکوشند اقتدار کلیسا را در هم شکنند چون دیگرگونی‌های ممکن بود تمام جنبه‌های زندگی چه سیاسی و چه دینی را آشفته سازد تمام بدعت‌گذاری‌ها بد تلقی می‌شدند چون استیلای کلیسای روم را تهدید می‌کردند به همین دلیل بود که بدعتگذاری تهدیدی همطراز خیانت تلقی می‌شد عضویت در فرقی بدعتگزار چه از نظر دولت و چه از نظر کلیسا جرم محسوب می‌شد خیانت به معنای ترک وفاداری شخص نسبت به فرمانروا یا دولت تلقی میشد و به بدعت گزاری به مصابه خیانت نسبت به تعالیم خداوند نگریسته می میشد. پس بدعت و خیانت می بایست مجازات یکسانی داشته باشند. مجازات خیانت به طور سنتی مرگ بود. پس عقیده بر این بود که این مجازات برای بدعت نیز سزاوار است. کلیسا به منظور تثبیت اختیار خود برای تقاضای مجازات مرگ به تدریج حق مداخله در زندگی دنیوی مردم را به خود داد و آزادی‌های مدنی، دارایی و حتی جان کسانی را که بدعتگزار تلقی می‌کرد، می‌گرفت. باید خاطر نشان کرد که کلیسا همیشه صورت ظاهر را حفظ می‌کرد. و ترتیبی میداد که اعدام های در ملع عام به نام دولت و به دست مقامات کشوری انجام شود اما قابل انکار نیست که بسیاری از متهمان به بدعت گذاری در جریان بازجویی یا در دوران زندان به دست دستگاه تفتیش عقاید کشته میشدند کاتارها نخستین نشانه‌های تب ضد بدعت‌گذاری که به تفتیش عقاید تبدیل شد در اواخر قرن دوازدهم نمایان شد و آن هنگامی بود که دستگاه پاپی از ظهور یک فرقه مذهبی در ناحیه‌ای از جنوب فرانسه به نام لانگدوک با خبر و حراسان شد گروههایی از مردم که خود را کاتار به معنای پاک و خالص مینامیدند، مدعی بودند که آنها به مسیحیت راستین نخستین عمل می‌کنند. درست به راه و روشی که عیسی آموخته و بعدها به صورت کلیسای کاتولیک یا فراگیر نهادینه شده بود. کاتارها در جذب نوکیشان کارایی داشتند. چون رهبران مذهبیشان به نواحی روستایی سفر میکردند و آیین خود را در میان دهقانان می‌پراکندند از این رو آرای آنها را نخست بسیاری از مردم بینوا و بی سواد پذیرا شدند به هر حال کاتارها اهمیت زیادی پیدا کردند و فلسفه ایشان به ویژه در شهرهایی چون تولوز، آژن، بزیه و آلبی پیروان گسترده‌ای یافت هزاران نفر به کاتارها پیوستند و بسیاری از نوکیشان افراد ثروتمندی بودند. به ویژه این کاتارهای شهرنشین ثروتمند اقتدار کلیسا را مورد تهدید قرار میدادند چون به لحاظ سیاسی فعال بودند و مانند خود کلیسا نیرویی بودند که باید در امور مالی و دیپلماسی به حساب می آمد. کاتارها در واقع بدعتگزارانی بودند که به برخی از عقاید اساسی کلیسای کاتولیک پایبند نبودند مثلا به ارزش روحانی شعائر کلیسا نظیر عشای ربانی اعتقاد نداشتند همچنین قبول نداشتند که عیسی ناصری پسر خداست کاتارها عقیده داشتند که رهبران خود آنها مبلغانی که آنها را الگوی کامل مینامیدند باید از قواعد سخت سختگیرانه ای پیروی کنند این الگوهای کامل زندگی بسیار زاهدانه ای داشتند از جمله مجرد باقی میماندند و با رژیم غذایی بسیار محدود گیاهی گذران میکردند. اینان چنان سطحی از پارسایی را نمایان می ساختند که کشیشان محلی که اغلب کاملا آشکارا تسلیم وسوسه گوشت می شدند همچون اسقفهای ثروتمند و پرمدعا در مقایسه با آنها ناشایسته به نظر می‌رسیدند کاتارها عقیده داشتند که فرد معمولی در لحظه مرگ می‌تواند کامل شود و به بهشت راه یابد کسانی که به کمال دست نمی‌یافتند به زندگی در کالبد حیوانات پستر محکوم می‌شدند چرا که کاتارها مفاهیم کاتولیکی برزخ و دوزخ را قبول نداشتند کلیسا از اینکه کاتارها در میان مردم لانگدوک پیروان زیادی پیدا کرده بودند احساس خطر می کرد. کلیسای این ناحیه خالی بود و پیشکشهای به آنها داشت قطع میشد. تفتیش عقاید اسقفی همین که عقاید کاتاریستی مورد پذیرش واقع شد، بسیاری از رهبران محلی غیر مذهبی به پشتیبانی تاکتیکی از این عقاید پرداختند و از مردان مقدس کاتاریست حمایت سیاسی کردند. برخی از اشراف محلی نظیر ریموند، کنت تولوز که پایگاه سیاسیشان در مرکز ناهیهی بود که تحت تأثیر بدعتگزاری کاتاریستی قرار گرفته بود، از این عقاید مذهبی تازه تأثیر پذیرفتند. طبیعی به نظر می رسید که ریموند و دیگران از کاتارها حمایت کنند در حالی که کاتارها پشت سر هم مورد حمایت همسایگان ثروتمند آنها قرار می گرفتند. این از آن هایی بود که کلیسا بیش از همه از آن وحشت داشت. اتحاد سیاسی با عام پسند که می‌توانست پایه‌های اقتدار روم را سست کند، این وزن را نمی‌شد تحمل کرد. اقدام علیه کاتارها و حامیان آنها ضروری بود. کاتارها داشتند تمام نظم اجتماعی را که کلیسا جزء ناگسستنی آن را تشکیل می‌داد، مورد حمله قرار می‌دادند. هیچ جامعه‌ای که به ارزشهای خودش ایمان داشت اینگونه انتقاد علنی را تحمل نمی‌کرد. و با این نوع بدعتگذاری تند روانه از همان آغاز پیدایشش نه صرف به مسابح نوعی خطا و لغزش بلکه به عنوان نوعی جرم برخورد شد. اینو کنتیوس سوم، یکی از مختدرترین پاپهای قرون وسطا، تصمیم گرفت علیه بدعتگذاران در جنوب فرانسه دست به اقدام بزند و آنها را روباه های کوچکی که تاکستان را ویران می کنند نامید. در آغاز کلیسا کشید برای جلوگیری از رشد کاتاریزم از اسقف استفاده کند. از این صاحب منصبان منطقه‌ای کلیسا خواسته شد بر تعداد معجزها و سفرهای رسمی خود به نواحی تاثیرپذیر بیافزایند. همچنین آنها را ترغیب کردند که بکوشند الگوهای کامل را دستگیر کند. برای این منظور از اسخفها خواسته شد در پی یافتن شواهدی باشند که نشان دهنده چگونگی حمایت رهبران سیاسی محلی از الگوهای کامل و شاید حتی پنهان کردن آنها باشد و بتواند جرم آنها را آشکار سازد. از آنجا که واژه بیشاپ یا اسقف از واژه یونانی ناظر مشتق می‌شود این مرحله ابتدایی جنگ دستگاه پاپی با بدعتگذاری تفتیش عقاید اسقفی یا نظارتی نامیده شد این اقدام اینو کنتیوس کار تازه‌ای نبود سلفش پاپ لوکیوس سوم در سال 1184 اعلام کرده بود که لازم است اسقف‌ها هر ساله در قلمرو یا حوزه نظارتی خود به تفتیش و تحقیق در مورد رشد بدعت‌گذاری بپردازند لوکیوس همچنین دستور داد که همه بدعت‌گذاران تکفیر و از عضویت کلیسا ترد شوند گزاران که از حمایت کلیسا محروم شده بودند میبایست به مقامات کشوری، شهرداران و دیگر مسئولان محلی که مسئول مجازات متخلفان بودند تحویل داده می شدند. لوکیوس این دستورات را با یک فتوای پاپی یا فرمان رسمی صادر کرده بود که عنوان آن با این عبارت لاتین آغاز می شد. ابولندم که در آن ریشه واژه انگلیسی ابولیش به معنای برانداختن آشکار است. دستورات لوکیوس عموماً در دوره زندگیش به اجرا در نیامد. به هر حال، اینو کنتیوس سوم این فرمان را راه آسانی برای برخورد با بدعتگزاری روبروش در لانگ دوک یافت. کلیسا عقیده داشت که چون سرپرستی مقدس روح آدمیان را بر عهده دارد، نمیتواند اجازه دهد که چنین اشتباهات فاحشی مؤمنان را به پلیدی آلوده سازد. به ویژه که ثابت شده بود آن اشتباهات ممکن است نه تنها افراد ساده و بیسواد بلکه حتی افراد بسیار باهوش و تحصیل کرده را به گمراهی بکشانند. اینا کانتیوس از روم خواستار آن شد که اصخفها پیشرفت کار خود را در از میان برداشتن کاتارها به او اطلاع دهند. این گزارش ها نشان میداد که کاتارها هم تعدادشان و هم نفوذشان در میان رهبران سیاسی در حال افزایش است. در واقع پیر دو کاستنلو سفیر ویژه پاپ در آلبی در سال 1208 به قتل رسید که بنابر گزارش بر اثر ضربات وارده از سوی پیروان ریموند تولوزی کشته شده بود.